داستان های صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان کشف حقیقت یاشا کاردو، حاکم کشمیر، وظیفه روزانه خودش رو انجام داده بود. او روز پر مشغله رو پشت پشت سرگذاشته بود و با کارکنان ارشد حکومتی ملاقات کرده بود تا مشکلات کشور رو بررسی کنه. او یک روز در هفته رو به این کار اختصاص میداد و در روزهای دیگه به شکایات و مشکلات مردم عادی که به دربار مراجع میکردند رسیدگی میکرد. یا به محله های شهر میرفت تا از نزدیک با مشکلات مردم آشنا بشه. وقتی کارکنان حکومتی محل ملاقات را ترک کردند یاشا خمیازه ای کشید، کشا قوسی به بدنش داد و به سمت حرم حرکت کرد، در همین لحظه نگهبانی وارد شد و تعظیم کرد، یاشا با سرش جواب احترام او رو داد و پرسید، مشکلی پیش اومده، نگهبان جواب داد بله قربان برهمنی پیر قصد شرفیابی داره و در پی دادخواهی اومده یاشا دستور داد او رو به حضورش ببرن نگهبان خارج شد و چند لحظه بعد همراه مرد برهمن برگشت برهمن آداب احترام رو به جا آورد و گفت خداوند پیروزی و سعادت را نصیب شما کنه یاشا در مقابل برهمن خم شد و پرسید آقای محترم و بزرگوار چه کاری براتون میتونم انجام بدم؟ برهمن جواب داد: ماهاراج، من طالب عدالت هستم. یاشا که در جستجوی جزئیات بیشتری بود گفت: بگو چی باعث رنجش و آزارت شده؟ برهمن توضیح داد: من به این طرف و اون طرف سفر میکنم و آیین و مراسم مذهبی هندو به جا میارم. برای کارهایی که کردم صد سکه طلا به دست آوردم و اونا رو توی یک کیسه یه کوچیکی گذاشتم. یاشا لبخندی زد و گفت خب ادامه بده گوش میکنم برهمن ادامه داد. در راه به یه دهی رسیدم تشنه شده بودم چاه آبی دیدم و سطلی که دسته‌ی اون با تناب بسته شده بود. این چیزی بود که بهش نیاز داشتم. کنار چاه رفتم و سطل رو از دیوار کوتاه چاه پایین انداختم. سطل به سطح آب برخورد کرد. خم شدم تا ببینم آب وارد سطل شده یا نه که در همین لحظه کیسه های پر از سکه های من از دهوتی سر خورد و داخل چاق افتاد. پاورقی دهوتی لنگی که هندوها به کمر خود می‌بندند. ادامه داستان بره از گفتن باز ایستاد یا شاکه علاقمند شده بود گفت پس تو کمک میخواهی تا کیست رو از چاه آب بیرون بیاریم؟ برحمن توضیح داد نه مهاراجه هنوز داستانم تمام نشده نمیدونستم چه کار باید بکنم کنار چاه حیران و گیج ایستاده بودم پولی که به زحمت به دست آورده بودم داخل چاه بود و نمیدونستم چطور میتونم کیسه ها رو از چاه بیرون بیارم در همین موقع یه مرد روستایی به من نزدیک شد برحمن گلوش رو صاف کرد و ادامه داد. <تصفح> <تصفح> روستایی وقتی حال منو دید پرسید چه مشکلی دارم منم مشکلم و براش تعریف کردم او از من پرسید به من چی میدی اگه کی سرا از چاه برات بیرون بیارم گفتم هرچی بخوای روستایی سرش رو به علامت موافقت تکون داد یاشا حرفی نمیزد به رحمن ادامه داد اون مرد روستایی لباسش راستنش در آورد و به کمک جاپاهایی که روی بدن چاه بود داخلش رفت وقتی به سطح آب رسید داخل آب پرید و من دیگه نمیتونستم ببینمش. مدتی بعد بالا اومد و من پرسیدم پیدا کردی؟ جواب داد نه. اومدم نفس بگیرم. بعد برای بار دوم توی آب فرو رفت و سرانجام با کیسه سکه ها از داخل آب بیرون اومد و فریاد زد. کیسه رو پیدا کردم. بعد از چاه بیرون اومد و در حالی که آب چکه چکی از سر و صورت و بدنش میچکید کنارم ایستاد ازش پرسیدم خب حالا بگو انتخابت چیه؟ او دو سکه یه طلا به من داد برحمن داستان خودش رو به اتمام رسونده بود یاشا پرسید خب پس مشکل چیه؟ برای چی به دادخواهی اومدی؟ برحمن بریده بریده گفت آقای من این صد سکه حاصل پنج سال کار سخت بوده. روستایی فقط ده دقیقه زحمت کشید. بعدم نوود و هشت سکه از 100 سکه رو برای خودش برداشت. آیا این عدالته؟ یاشا با اشاره سر گفت موافقم که روستایی نباید نوود و هشت سکه رو برای خودش برمی داشت. اما تو هم باید خیردمندانه برخورد می کردی و پاداش کار رو به روشنی و به طور مشخص تعیین می کردی. آهی کشید و گفت. بله، حماقت کردم ماها راجه. یاشا به برهمن اطمینان داد و گفت: حالا برو و فردا به دربار بیا. بعد از طلوع آفتاب من روستایی رو به اینجا احضار میکنم و بعد تصمیم می گیرم که چه کار باید بکنم. روز بعد در موقع مقرر برهمن به قصر رسید. او رو به حضور حاکم بردند. برهمن تعظیم کرد و برای سلامتیش دعا کرد. یاشا از یکی از معموراش خواست تا اون روستایی رو نزدش ببرن و روستایی تا رسید به پای حاکم افتاد. یاشا با صدای محکم گفت مرد بلند شو از خودت دفاع کن. میخوام داستان رو از زبان تو هم بشنوم. روستایی همه جزئیات رو بیان کرد. داستان او شبیه همون چیزی بود که مرد برحمن روایت کرده بود. سرانجام مرد روستایی گفت ماهاراجه ما با هم توافق کرده بودیم من قول داده بودم کیسر رو پیدا کنم و او قول داده بود هر چی رو که انتخاب کنم به من بده و من هم انتخابم رو بهش گفتم یاشا با صدایی آرام و شمرده گفت اما تو این کارو نکردی روستایی کمی به عقب برگشت و گفت ماهاراجه چرا این کارو کردم چیزی رو که انتخاب کرده بودم به بهرحمن دادم یاشا پرسید تو برای خودت چی رو انتخاب کرده بودی؟ برای خودم؟ یاشا منتظر پاسخ موند و گفت بله مرد روستایی گفت 98 سکه یاشا گفت که اینطور؟ مگه برحمن به تو نگفته بود که انتخاب خودتو بهش بدی؟ اگه تو اون 98 سکه رو انتخاب کرده بودی باید این مبلغ رو به مرد برحمن میدادی نه کمتر نه بیشتر در حالی که تو دو که به بررحم دادی، بنابراین حق تو اون دو س است به این ترتیب یاشا قضاوت صحیح و درستی رو انجام داد. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای افسان نشانی کانال تلگرامی T نقط می/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 نقط ام مهران دوستی. کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی